بردنی از این زو خوشی ویس لطان لبی خوش حالی لبشی هفت و هشتی خواند نویکتی بیچشتی من جوری هزاری مکریانی دن ولاتان فرمون آمشوش لگلمان بن کجاری مکریانی دنو سی، روژک لاگلی بدران بوین، تیاروک همو روژانی تر بوانبارانی کرد. زیاد لخلک لاوک بناوی فتح سرینه بو کنه برد یکو لشی بدره بو بو. ساسم بردی که بلاوی کرد بو یکو تو شهیدی کرد. عرب کلک افسری کی ارتشی عراقو زرق سسیر بو خوشی من او بو چند کسی که لدم کندال لیکو دو بوینوا که او سرگوزشتی خوی بگیرد و پیپ روژیک الی سنجاری ک اندامی مکتبی سیاسی بو هاتبو ول پیکننده بشدار به تلگرافی ک بو هنه خوندیو ملي لنکو گریانه وثمانه وتی باوکه مردو با سرکزی راګل کوتی نو هاتنه لای حبیب محمد کریم او شوتی هاخیره وثمان کاک الی باوکی مردو وتی د اجازه بوه دلن باوکه سژنه بو تی کی فکر دو دمرج جګی خویا لویدا گریان کرایو بپیکن من لشورج دا لبرد فیارخم نه د شاردو خلک نه و ابو ازاتیو لوون بغیر ترم بل ام لراسیه کیدا من تمبال تر بو طاقت نو نو کونچونم نه بو هر چی د بیا مردن هر جاریکا ګردی کی به اشکوت دارستانه بو تا تهاله د دیمان د نرد او روجی کده مانزانی تیار دی من لسر تخت فنریخه خو نم نوستم جن یک ملاناو زور به ترسای و شیواوی خوی به داکرد. کم دا کرد. او ما مستاچیب کم، ناگمه گرد، او تیارش بومبای هاوشتو و دشاوی دخیل فکر یکم بوب کوا. موتم خاطو آیش برز، یان دبی خود بگیه نیه گرد یان ور سر تختکی من. اویش و تی، ایر رو لو تنگانه دا قصه در پریو خوی گیهند بنداران، تا بومبای داوشت تختکم و دیواره کند لرزین. بلام چم یه نکود. شوک چند میوان یک من هاد دبو لسر بان بین. وتم چرا زمبور که هل دکم؟ لسر من خاطر جم بین تیاره نایا. یکی نیو چون بخصی تو خاطر جم بین. چرا ام هل کردو تیاره هاد جاوره هله. رمضان هات یمک شو تاروش کرمن نوسین بو پرشیوان ملا خبر دکردو که هست سلاب که. ملا دی گود هر چند بو خواتان برو جو نبن با قرآنی لیم خویندو خیری روجوی ام گوندن وی بو ای و یا ناو مردی 아이ش ملای باسم کرد راو چی بو بشوین کارگان شید زانی خو زور خسیز بو چی بو ای به ایمه د کو بسیت منو کوتر 15 قران شوان سیرما سوپمن یلد دکد بو پولو تنکی که دو کیلوای رونی شاپسندی بتالمن پر لکوتر یان کو سرمان دگرتو د پولو من دخست شویک تقیه ولا منو بو حمید عثمان کونا رئیس حزب شوری نر دراب ولا من کاو کاریمن لنوسین دابکا شوک من خری کی کوتر پیشاندن بوم وتی نتو و نسامی نا زان نشتی باج بنوسن من فیرتا نا کم یمشوتمان وقت چی وتی پیوسته نا ملک کی کی تایبتی در کین مثلا چون د بیا پیشمگی چاکو شتی زیرش غتم کاک حمید تکایا هول نعمل ملک بنوسا چون کوتر د صوب د د تور ربوتی یه وقایل تا به هم مشد دکن. ایواری یک سالاری حیدری، سمایل شریفزادو چند پیش مرگی که تری ایرانی میون بون. شو که جامنی شندن لسردی بعدو حسیر کیشان لپیدابو. سالار با توری رویش بعنی هت واقویی. چو ما مال جوادا گا. کس لوتاق نبود نیم دیتا و نیستم. برایستی قد پیش مرگی هندوییا و بپیم ندیت بو. مکتبی سیاسی لغالي بردان بو كنزيك لوجه زورمن من هاتو جوي غالي بردان دكر غالي لنوان دو كيو دا اوانده تنگ روجي بحاري سياساعة لاي روجاوي اوانده بردالانو سخته ورچی پيهل ناگره پلنگي زوره چن حبسيه کی عرب شوهلات بون لترسی پلنگ هاتبون ونو حبز جاريك نواني گردين بون تيارهات من داقل سامي تازه و حافيسي من کرد بو لری که دمروانی تیاره بریقی که لکل که درچو وتم احا پیکرا هرگیش تی نوالیو جا خبرهات که تیاره که سوخوی کوتوه او روزش سید رسولی بابی گورو چند یک لحوالان ایرانی میوانم بون کلاموایا شریفزادو سالاری حیدریش دگل بون با پلهاتی نوبرو چمان که تیاره کوتو تماشا لره گه توشی تاقه مالک هاتین لذار گلی که ره گو کنبانی مالک یک بون سګي کی زور دري بورا لوکه شالوی نه بګوچان بوي چوم هرو هرځدهنیو من ګوچانی لرا وشېنمو کم کم پید د کاکا ګوچانی برنه کوي پاشو پاش لو سربانو کوته خورو قران دی خو منګي انده کلاکی تیار احمد توفیقو چن کی تریش له شيخانه بون. کلاکی خلبان سوتابون کدوان بون بوبونه خلاص هندگ نیشانه تیار کوتن من کو کرده و شو بوینه میوانی احمد کا خلقی گرشی تانی بری مرگان لشوش تیارکا که پلاستیکی که رونی استور بو دسک خنجری تاشی بو بدیاری دای بمن که روشنامنوسی اوروپای دیان گود خنجرکت شعری هرچاک تا یستاش او خنجر یادگاریم هر ماو لماگی اپریل دا سلام عرف و رئیز زهید محمدکی باسم کرد لتیاره دا سوتا براکی او رحمان عرف بو بجینشینی و بزاز کرا بسرک وزیر بلام هر نوستا پیش مرګه لزور شوینن زوريان شخص بعدج مندا دجمن ل ل روان د زوحاته پیش سري چاي هندري نيګرتو توپين تنزيکي قالاله ده مله مصطفا هات مكتبي سياسي بدرن لا رشمالک دابو چو مله تاويغ مابون چاينبو وتم دلن جعفر سلطاني حورامي لشکري ل ايران كردبو كبره کي همبانه به کول ل دووي لشکري درويشت ل توشه سلطانه بنا شکری نالیم لیره چایش نیه سبه اواره چون ملا مصطفا ببینم لشیوالایگ داد دگل هباساغا غابو. گلی لها هباساغا دکل خبری سرکوتنی دجمنیان دای که هاتو با دیوی بالکاتی دا هباساغا قراری دا بو زور لاغیانیولاد لگلی بدران ببینی اصر بو و تیچه مدیمو بسواری استر رویشت خویچو بو جبها هفتکسی بسرکردیاتی فخری حمداغه آماده هجوم کردبو که هر د به اویلین گیراوه 2090 شرهل گیصابو حوال توپمن کست وان خضرنوی کله سربو سنگری کی دوجمنی لارې زی پیشو پیکابو او سه هجوم کرابو بیا سیمی دولت ما ل کچون شکانک شکاول روزنامګری کی زلامی فرنسي خو گینده شرګه د او پترله هزار کلاو خودی سربازان لا شرګه بجماوه کلاک هر با سینا کرے لشکری دښمن قلب بووه خویان ان کوتاوه روان دوست جګل ساتان تفنگو دی بیسیم بیسم 4 و به هزاران پتو جلکی سربازی با ده هزاران فیشک بو به تنانت کوتی فرمانده با استیروو جوالو کی نایلون پرله نقشې شر دسکوت سرکوتنی کی در این دو پیش مرگش هید کردند که یکین اثمانی ناوبو اویتریشم لبیر نماید، ایتر دولت لشاری هندرینو و ذاتیشکو عبدالرحمن بزاز بیانی بلاو کرده و کل راگی گفتگو و حل بکره هاتو چو گفتگو لپاش بیانی که بزاز کل روژی بستونوی شش سالی ۱۹۶ دا بلاو کرده و دستی کرده از بغدا و هاتن، لکن شورشوه دا تا دگیشت اوک سرک جمهور عبدالرحمن الرحمن عرف بو خویحات کچایو با بارزانی بکوه. با لامل روی رواندوز لدشتایی دامینی چیا دابزی که قراری پیشوه نبو، او شویانش دیتوانی تلاییی زور خطر بیا بو کشتن و گرتنی ملا مصطفى. بتايباتیک لشکری کی زوری بنوی ګردی پاسوان دغل خوې نه بو همو دوست او خوشويستي کی برزنی نه اندوېست برزنی لوش وینادم به چی عارف ببینی او اشکراه کی آتی د داو کوتنی سمایل اغه سمکو حمزا اغه منګور دهه ته برچاو برزنی بو خوشی حستی دکړت کګورنی جګی چاو به تر کوتنه کا فیاله کی اشکرا یو هر له پاجګز بنوی سره جمهور کشوین ګورکی کردبو زور قلز بو بلانکی او دولمندو کربدسته ګورکان کوردی بغدایی اما کسید که سرک جمهور و شربیستان به مسلحات خوانزانی سوربون که برزانی او حلال از خوانده او بچه او دشتر او بکیوه تبار خطره او تاویلی هات برزانی رقی هسته وتی تی نبیه هر چکداریشون در دا قلبیانو به تنیا بسواری جه بگده روژ کې زړتال بو بو دستاني د سوازي برزنی او چاريش نه دکره حسین احمد اغا بدزیه وقاله یو چکداري بر لخوار خې وتاکني سره او جمهور هووالاني ګرځد کیدارستاني غتو بلانبر بګردي حرس ويستا او چاونو اربو که هرکا دستان بزاوت تیان بسره ونی چکداراني برزنیش بدزی برزنی او خو انخزند نو پنچکی لای شي ازوز کوو دوری خې وتانی انده زور که د پیواني نزيکي برزنی زور لو روژه نګران بون یک لو خلکه مندلم زور توندلی اده چون مننم خیووت کتنیا بارزانی و عرفی ته دا بو امرغه شاد دګمه برګدما چمن ترزنده بو دما چش لسرفي بو که اگر له دره وهرایه عرف عارف نانی دنیو ورو له یاندسته جمهور وددره دیار بو او چک درانی مزیک بون له نو خیوته کندا بون نه چون خواردن هر وکمن جوی را امرغه وتمان تیرین نانه خوئ رئیس ستادی ارتش عارف هته جوړی خیووت سرتیک دګل زورګ ویل سر هستبوم کې ګیم پیګود خراب توجبون او نه له هم لا ودا مزرا او نو با سرته به امر اغم وت استه اوان سنواب ځلم نه ويرن پلب بزوین هر له موسلو بغداد او پیو کوم د ناسی بناوي بو او شان د گل خو نه ابو بلنده ته پرې وتی اوان به نای فلم بردار د گل منحاتون هميان پیو کوجو تلهای اثر داوطلب تپیدم ماین عرف مشنکی سواری خوی پیشکش به برزنی کردو خواهی فیسی کر. برزنی سواری مشنک کنم بو، بجی بقی خوی هاتوا. من حاولم داده که دقل دا خوی سوارم ک. برزنی توشم هاتو فرمی وارد دقل من بروی نوا. لرگا زور دلم پربودم. هزاران جر اودولت بی ناموسانه با فاندل فیلوسی اندنا کردند لبین بردن. فرمی بله خطر بو، بلام آو پیاز لانه زوریان من رقم هست تو هر خواه گفتوگو گفتگو حتوتوی نشرع عاشتی درېږي کېشه زورجر پک هلد پر جینو زورجر هم نیو ترکی شربو اما وی دو سال او سه منگی کېشه ل منگی جولای سال 1968 هیندک افسری عجبدنو نږدې لسروک جمهور دغل با اسیان رکوتبونو کډتاین دجی او رحمان عارف کردو حالیان داشت پاش 13 روز باسی بسر کړیاتي صدام احمد حسن بکر کوده تا چیکان اندر کردو دوباره بعض حکم عراقی گرتود است. لسرتای بحاری 68 دا خیزانم بدزیه و حاتبو سردانم. مندال شیه نبون جگل محمد. خانی کرم که لطمانی چل راجه دا بجمهشت بو خرکلاو نزیگ با سی بو. هستی کرده بو کبابی نیو دیار بو زوری بابا پروش بو. هر که گود یا او بابتا دستی کرده ملم بری ندادم. هر دای گود ای بابی خوم تازه بجد نایه من باب خوم هيا راستی کوم او بو اونده دل مګیره غم جینبم کاو د من دل تزنم هر یز نشته و لره دا د میه باسر له خوم من د لکنم بکم محمد کرم عمر چوارمان کم تر بو کبه جمعشت له مال بخیو کرا او وقت دلن د بیوژنی چاو کردو که هات نه بغدا کور عمر له نو سال دا بو نه دیار نه بو ما او پیاوه که کې من ګلمن له مالک دایا هرکه خالص ده بو دېر ده پرې د څمو مالخو من کمنزوري مال مامي له لاغ بو مستفهم کله شقلاو بو بو تمن له کم تر بو به جمعشتو چومه سوریه پښ سالونی و کده ګل دای کی هات بولم نه د نسیم پیدا وتم امو واته مامه کار محمد مامي او دای کریمی له بیر چونو لايوابو او ان کسو کاری كاتیا زاگروسه ماته دنیا له موسکو بو او وش بختي من د گل من دالنم او شان صالح په بغداد کچو نه تمدراسه زورکم دی تومن من هربا شاخ کیوان او بو مو تنیادایک اگای اگر الفت یند من زور نګرتبی حقو کم تر توانیوما حستی خوشویسی با کانین بو دربر او حالت هبل طالب بلان به ازادي کردستان لو به استربوخه خو متنیا نظر خوشی سیو سرپرستی معلومن دل پکم لماوی او دربدرینده اگر د سرېکی خیاوه پتل له 15 سال دالم ډرکوتوموا و بوبو به مانګو دو مانګ لئن بو مودی سن به جمع هشتون اوی بو 8 سال او کله لشورج ک هوال جار 14 منګنم دیتنو جان کیج سالو چندکی خاین تعبيرم له حال خوم من دالم دکرد و دلوم تنگ دبو نه خوازه روجانی چژن کس نی چژنان بداتیو ضلیان خوشکاو جنبی وژنومندال بے بابن بلان دېسن دلم بکوشان لرګي ازادي ملتکم صبرې دهاتو هم لا کردیکم بمندالی خوم دزانی زور کس وهبون لا من قد خمناخم بلن اون اگان د دلو درونی من نبو من پیکانی نکرد بو وسواغي غم خوارنو هميشه غلطه قسي قوارم دکردو خمو کلي دلي خون پيدا دپوشي اما پياو له حق لا نه ده هنري ګوره هنري معصومي خزانم بو دكريبلن فرشته کي خدا بو بو رفيقم بر سي باين رود باين بو پاري رضايت يوه بي اوگلل بخت او هر دل نرمو با هر دل سوز چاو دیری من دالی خوی کردو دور لامیر دا جیاو قد گلو لومه کم لیا نبیست. اگر تنیا نانی وشکی هبا یان ساز و تیار باو بی توانی باز زور خرزکا هرگیز فرقت پیناه کردو همیشه رو خوشو و شکران بجیر بو. هر جنیکی دی که لجیگه اوبا سالکیشی دگل در ندبردم. هرچند من بروان بر ببخت هتنون هتن نیو لمای چرنوس حلکو تیکو دیتره بلانبو حسابی که دالن فلان من اگر لزور شد خراب مبوهات وا لجنو شریکی جان ده بختوار بم جنی پیشم هر زور باشو جنی دویم لباسش باشتر و لوفاش وفادارتر بو استاش لپیریم دا مای همدال خوشی جان م. هندک لا سال 1965 نزیکی 8 مانگ لا 1966 للیوجا لسر چپ منی شورش ماموا ککسامی حوکرم بو پیشمرگه چاپخانمن سعید ابو شامل ک مسیحی عرب بو زور لکاری کاری زن زانه بو سفری فیلی ک باسم کرد او شی ابو مجید کساس که او سامن دالگ بو لشاری سلیمانی لچاب خانه کرده که و چند جارک نوم لپشک تیبی کردی و دیوه کسپاسیان لکردوه بختورم که به های منو فیری پیشی چابگری بوه شیخ نورینایو چن که چند کسی که دیکه سفر زور جنگن بو مجید لوگ تو جنگن تر روشنه بو شرک نکن وقت درسی مدرسه لیستنبوان سیبون شما مجید و سعید یک شما سفر و مجید دو شما شیخ نوری و سفر یعن مجید پیه کوا دبیه شرب کن راجیوا سفر دو شریا کرد دیگود موسا با اما قرز بیال سرم دیتم سفر دو مریشکی با دستاوا وتم اما چیا و تی لجنه کم کریوا لگون یندزه یکی با دينارك. وتم غذابت لیباره مریشک یکی با ح و تحت من، و تی ناماموسا، چنانکه و هر یک حفظ جو جل هال دنن، سی و بدو دینار هرزانه. پس چند روزهک سفرت فن لشندا برای یندا. و تی با خوب، و تی مریشک کملا چنگ او شی خاکان گشت یان فعصد بود. اتی موج نای کجم. و تی سفر جارک بخاریان زنیمی بسیتی. مریشک کانت بکر قصابی. دعای و تی من بدنارک لیت کرم. بابنکسریان ببره. و ماموسا. خویشملګشته کې نه کوم او تم ايچون وتي کوابه خاصه وگرانی خوشویز لیر دوام شوی حتی نکوتایی بشی حفته وشتی خواند نوی چشتی من جاوری هجاری مکوریانی تا علا خواند نوی بشی گیتر در نوا شادو بختور بن.